سلام به شنوندگان خوب افسانه های صوتی با داستان دیگه ای در خدمتتون هستم امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید اسم داستانمون هست گوسفند عجیب روزی روزگاری وقتی که پری‌ها زندگی می‌کردن پادشاهی سه تا دختر داشت که هر سه زیبا و باهوش و جوان بودند ولی دختر کوچکترش که اسمش میراندا بود از همهشون زیباتر و باهوشتر بود پادشاه دختر کوچکش رو بیشتر از بقیه دوست داشت و جواهرات و لباسهای بیشتری براش خریده بود دختر کوچکم که دختر دست و دلباز و بخشنده بود همه چیزاش چیزاشو با خواهرش و با دیگرها تقسیم میکرد پادشاه همسایه هایی داشت که میخواستن آرامش سرزمینش رو به هم بزنن. اون به فکر افتاد که به طور جدی از کشورش دفاع کنه. بنابراین ارتش بزرگی رو برای جنگ علیه اونا فراهم کرده بود. دختراشم به قلعه فرستاد. اخبار جنگ هر روز به اونها میرسید. و هر وقت که پادشاه شهری رو فتح میکرد و یا موفقیتی تو این راه به دست آورد، پیش دختراش میرفت تا اونها رو ببینه. اون دختراش رو که خیلی زیبا مهربون بودن میبوسید ولی دختر کوچیکش رو بیشتر نوازش میکرد چرا که اونو از همشون بیشتر دوست داشت. یه بار که شاه و دخترها در یه مهمونی نشسته بودن شاه که معتقد بود هیچ چیزی تو این دنیا بدون دلیل نیست به دختر بزرگترش گفت بگو ببینم تو چرا لباس سبز پوشیدی دختر جواب داد با شنیدن خبر پیروزی شما فکر کردم که رنگ سبز خوشحالی منو میلو خواستم به پایان جنگ رو بیشتر نشون میده شاه گفت این جوابی خوبی بود و تو دخترم تو چرا لباس آبی پوشیدی دختر دیگه گفت برای اینکه نشون بدم ما به موفقیت شما امیدواریم و به شما بگیم که شما مثل ستاره در آسمون آبی میدرخشید شاه گفت جوابای شما منو تعجب زده کردش تو میراندای عزیزم تو چرا لباس سفید پوشیدی میرانده جواب داد چون رنگ سفید از رنگهای دیگه بیشتر به من میاد. شاه با عصبانیت گفت چی گفتی؟ یعنی تو فقط به همین موضوع فکر کردی؟ دختر گفت فکر کردم به این ترتیب شما بیشتر خوشتون میاد. همین. شاه که واقعا اونو دوست داشت از این جواب تقریبا راضی شد و نمیخواست که بیشتر با دختراش بحث کنه. و خودش رو از شنیدن این جواب رازی نشون داد. شاکوب حالا که شام خوردیم و تا موقع خواب وقت زیادی داریم برام تعریف کنید که شب گذشته چه خوابی دیدید. نختر بزرگ گفت که خواب دیده پدرش لباسی براش آورده که سنگای قیمتی روی اون از خورشید و ماه و ستاره ها هم درخشانتره. دختر دوم جواب داد که خواب دیده که پدر براش یه چرخ ریسندگی آورده و اون باید نخ‌های زیادی رو بریسه. دختر کوچکتر گفت من خواب دیدم که خواهر دومم عروسی کرده و در جشن عروسی شما یه کوزه طلایی به من دادید و گفتید که دستم رو بشورم. زوج با شنیدن حرفای دختر کوچکش خیلی عصبانی شد و به شدت اخم کرد. و همچین قیافه یز از خودش نشون داد که همه فهمیدن عصبانیه. خیلی زود رفت و خوابید. اون نمیتونست جواب دخترش رو فراموش کنه و با خودش میگفت: آیا این دختر میخواد منو بردهی خودش کنه؟ باید میفهمیدم که چرا لباس ساتن سفید پوشیده. اصلا به فکر من نبوده حالا یک کاری میکنم که به این افکارش پایان بده با اینکه هنوز صبح نشده بود اون از جاش بلند شد و سردستهٔ محافظاش رو احضار کرد و بهش گفت آیا شنیدی که میراندا چه خوابی دیده من فکر میکنم که اون میخواد کارهایی رو بر ضد من انجام بده برای همین ازت میخوام که ونو به جنگل ببری و بکشی و برای اینکه مطمئن بشم که این کار رو انجام دادی، باید قلب و زبونش رو برای من بیاری. اگرم بخوای منو گول بزنی، سر از تنت جدا می‌کنم. فرمانده محافظا از شنیدن این دستور پادشاه خیلی تعجب کرد، ولی جرات نکرد که ای در مخالفت با پادشاه بگه. چون میترسید که او بیشتر عصبانی بشه و کس دیگری رو دنبال این کار بفرسته و اون تنبیه بشه اون همون موقع به جمع سربازاش رفت و با اینکه هنوز خیلی زود بود گفت که شاه گفته میراندا رو خبر کنید میراندا هم همون صبح زود بیدار شد دخترک که سیاه‌پوست کوچیکی به نام پاتی پاپا مراقب میمون و سگ اون بود و دنبالش میدوید اسم میمونه گرابوگن و اسم سگن تن تن بود فرمانده محافظا از میراندا خواستش که پیش پدرش که تو با قدم میزنه بره ولی وقتی به اونجا رفتن وانمود کرد که شاه رو پیدا نمیکنه به میراندا گفت حتما آلی به جنگل رفته و بعدم هم همراه دختر به طرف جنگل رفتن در همین موقع هوا داشت روشن می شد و میراندا تونست اشکی رو که در چشم فرمانده جمع شده بود ببینه اون فهمید که فرمانده خیلی ناراحته با مهربانی گفت موضوع چیه؟ چرا شما ناراحت به نظر میرسین؟ رسین؟ اون جواب داد آه شخص خانم. هر کس دیگه ای هم که همچین دستور وحشتناکی رو دریافت کرده بود همینقدر ناراحت می پادشاه دستور داده که من شما رو اینجا بکشم و قلب و زبونتون رو برایشون ببرم. اگه این کار نکنم خودش منو میکشه. می کشه. بیچاره وحشت کرد رنگش پرید و آروم آروم شروع به گریه کرد. او های زیباش به فرمانده محافظا نگاه کرد و گفت تو واقعا میخوای منو بکشی من که تا به حال به تو بدی نکردم تازه همیشه از تو پیش پادشاه تعریف کردم افسوس که پدرم جواب محبت‌ها و احترامای همیشگی منو اینجوری داده مرد گفت خیر شاهزاده خانم من حاضرم بمیرم ولی آسیبی به شما نرسه ولی حتی اگه منم کشته بشم شما در امان نخواهید بود ما باید راهی پیدا کنیم و یک کاری کنیم که شاه فکر کنه که شما مردید میراندا گفت ما چیکار میتونیم کنیم اون فقط در صورتی باور میکنه که تو قلب و زبون منو براش ببری شاهزاده ساده و فرمانده به راحتی صحبت میکردن و حواسشون نبود که پاتی پاپا پا همراهشونه اما پاتی پاپا که همه این حرفها رو شنیده بود جلو اومد و خودش رو به پای شخصاده انداخت اون گفت بانوی من من زندگیم رو به شما میبخشم ارزه بدید من بکشه من حاضرم بمیرم ولی شما خوشحال باشید شخصاده اونو بوسید و گریه کنان گفت چرا پاتی پاپا؟ زندگی تو هم مثل زندگی خودم برای من با ارزشه. مخصوصا حالا که چنین محبتی رو نسبت به من از خودت نشون میدی. من اصلا نمیخوام که تو بمیری. گرابوگن گفت شاهزاده شما درست میگیم اون خدمتکار با وفاییه و بیشتر از من به درد شما میخوره. من زبون و قلب خودم رو با کمال میل به شما میدم. من میخوام فدای شما بشم. میراندار جواب داد نه نه گراباگین عزیزم. من اصلا نمیتونم به دست دادن تو فکر کنم تن تن گریه گفت وقتی سگ کوچیکی مثل من هست چرا شماها بمیرید اگه کسی باید برای میراندا کشته بشه اون من هستم و بعد بین پاتی پاپا و گرابوگن و تنتن تن بحثی پیش اومد و کمی بعد صداشون بالا رفت و لحظه بعد گرابوگین که از اونهای دیگه سری بود روی یه شاخه پرید و با سر خودش رو به زمین پر کرد و در همون لحظه مرد. شاهزاده از دیدن این صحنه خیلی ناراحت شد ولی وقتی دید که میمون کاملا مرده به کاپیتان گفت که زبون اون رو در بیاره. ولی افسوس زبونش خیلی کوچیک بود و اندازه انگشت شست شخصاده نمیشد. و مطمئن شاه قبول نمی کرد که این زبونه میرانداه دایه. راز داده گفت آه میمون عزیزم من تو را از دست دادم و وضعیتم هم تغییری نکرد. پاتی پاپا پا گفت وظیفه منه که باعث حفظ زندگی شما بشم و قبل از اینکه کسی فرصت کنه چیزی بگه چاقوی رو در قلب خودش فرو کرد و همون لحظه مرد. اما وقتی فرمانده زبون اون رو در آورد متوجه شد که زبونش خیلی سیاهه و با این زبون نمیتونه پادشاه رو فریب بده. شاهزاده بیچاره گری کنان گفت من چقدر بد وقتم. همه چیزهایی رو که دوست دارم از دست میدم و وضعم بهتر نمیشه. تن تن گفت اگه فکر میکنید که من به درد شما میخورم با کمال میل حاضرم بمیرم. و خودش رو کشت میلاندا اونو بوسید و خواست که به طرف جنگل راه بیفته اما همین که روش رو برگردون متوجه شد که فرمانده نیست و خودش تنها موند و پاتی پاپا و گراب و تن تن در اون را افتادن اون نمیتونست سونجا رو ترک کنه و کسایی رو که دوست داشت به همون حال بذاره و بره به خاطر همون پای یه درخت یه چاله کند و اونا رو دفن کرد و روی تنه درخت اسم اونا رو نوشت تا همیشه یادش باشه که اونا چجوری زندگیشون رو فدای اون کردن بعد شروع به فکر کردن به این موضوع کرد که چجوری میتونه خودش رو پنهان کنه آخه اون جنگل نزدیک به قصر پدرش بود و ممکن بود اگه کسی اونجا بگذره رو بشناسه و از این گذشته اون جنگل پر از گرگ و شیر بود ممکن بود بهش حمله کنن و براحتی اونو بخورن به خاطر همون شروع به دویدن کرد اما جنگل خیلی بزرگ بود و آفتابم خیلی داغ برای همین بعد از مدتی نزدیک بود که از گرما و خستگی بمیره انگار اون جنگل پایانی نداشت دختره که بیچاره. از ترس مدام صدای پدرش رو میشینید که بهش میگفت میاد و اون رو میکشه. اون خیلی مضطرب و ناراحت بود. همینطوری که راه میرفت از ته دل گریه میکرد و اصلا نمیدونست که اچراهی باید بره. بالاخره صدای گوسفندی به گوشش رسید و با خودش گفت لابا در این نزدیکی ها هستن که گله هاشون رو برای چرا آوردن. شاید اونا بتونن راه دهکده ای رو در این نزدیکی ها بهش نشون بدن. آه خدایا، همیشه هم نیست که شاهزادهها و شاه ها شادترین افراد روی زمین باشن. چه کسی فکر میکرد که روزی من مجبور بشم خودم رو از دست پدرم که میخواد منو بدون دلیل بکشه پنهان کنم؟ با این فکر را اون به طرف جایی که صدا شنیده میشد براه افتاد. وقتی کمی جلوتر رفت متوجه شد که در تکه زمین سرسبزی بین جنگل که دور تا دورش پر از درخته گوسفند بزرگی ایستاده پشمای اون به سفیدی برف بودن و شاخاش مثل طلا درخشیدن. اون گردنبندی از الماز و تاجی از گل داشت و بالای سرش سایبونی از پارچه طلایی بود که اون رو از گرمای آفتاب حفظ می کرد حدود 100 تا گوسفند دیگه ریز و درشتان در اون دوره رو بودند که اصلا علف نمیخوردن بلکه مشغول خوردن های خوشمزه، بستنی و چیزهای دیگه بودند. اونا داشتن با هم بازی میکردند و بیشترشون گردنبندهای طلایی زیبا با جواهر و گل و روبان به گردنشون داشتند. میراندا یک کم ایستاد و به این صحنه نگاه کرد. اون از دیدن این گوسفندای زیبا خیلی تعجب کرده بود. گوسفند بزرگ فریاد زد: شاهزادهی زیبا، به جلو، از این حیوانا نترس. شاهزاده یک قدم عقب رفت و گفت: واقعا عجیبه، مگه گوسفندم حرف میزنه؟ گوسفند گفت: میمون و سگ شما هم حرف میزدن، چرا شما تعجب نمیکردین؟ میراندا جواب داد یک جادوگر به اونها این قدرت رو داده بود که حرف بزنن بعدم من به حرف زدن اونا عادت کرده بودم گوسفند به روش گوسفندا خندید و گفت شاید برا ما هم همون اتفاق افتاده باشه خب شاهزاده خانم چطور شد که شما به اینجا اومدین دختر جواب داد یه بدبختی بزرگ من بیچاره ترین شاهزادهی دنیا هستم و دنبال سرپناهی میگردم تا خودم رو در اونجا از خشم پدرم پنهون کنم گوزفند گفت بیا پیش من من جایی به تو میدم که هیچکس تو رو پیدا نکنه میراندا گفت در حال حاضر من یه قدم یم نمیتونم بردارم آخه خیلی راه رفتم گوسفند شاختلایی دستور داد کالسکش رو آوردن و چند لحظه بعد تا بره نزدیک شدند و شاهزاده رو داخل کالسکه گذاشتند که با پارچه مخمل پوشیده شده بود. دختر از دیدن کالسکه خیلی تعجب کرد. شاه گوسفندام اومد و کنار اون نشست و بره ها با سرعت زیاد راه افتادند. و فقط وقتی که به یک غار رسیدن توقف کردند. راه ورودی قار، به وسیله یه سنگ بزرگ گرفته شده بود. شاه گوسفندا پاش رو به سنگ زد و سنگ فوری کنار رفت. اون به شاهزاده گفت که میتونه بدون هیچ ترسی وارد اون غار بشه. اگرچه که اون دختر هنوزم می ولی وقتی یاد پدرش و عصبانیتش افتاد بدون اینکه فکر دیگه کنه خودش رو به داخل غار انداخت. گوسفندم جلوتر از اون به راه افتاد اونا داخل غار خیلی راه رفتن دختر خیال کرد که دارن به اون طرف دنیا و یا شاید به سرزمین جادوگرا میرن بعد از مدتی دختر جله خودش یه زمینی پر از گلهای زیبا رو دید عطر گلا همه جا رو پر کرده بود یه روتخونه زیبا و چشمه زیادی تو اونجا وجود داشت و اطرافش پر از درخت های بزرگ و پرشاخ و برد بود. حیوان‌های زیبایی مثل خرگوش در بین مشغول ها و جستاخیز بودن و بعد یه دفعه بارونی شروع به باریدن کرد که دونه هاش و مروارید و نقره و طلا بود. دختر از دیدن این بارون خیلی تعجب کرد. این مکان زیبا بهترین جایی بود که میراندا تو عمرش دیده بود. شاه گوسفندا به شاهزاد گفت که خودش رو ملکه ای همه ای چیزهایی که اونجاست جاست بدونه و بهش اطمینان داد که شاهزاده میتونه در سایه قدرت اون همه ناراحتیاش رو فراموش کنه. دختر گفت ای گوسفند نجید داده تو خیلی مهربون و خوبی من نمیدونم چجوری باید ازت تشکر کنم فقط اینو بگم که همه چیزهایی که اینجا میبینم انقدر عجیب و جالبه که من نمیتونم هیچ نظری درباره اونا بدم. همینجوری که اون داشت صحبت میکرد، چند تا پری زیبا به طرفش اومدن که سبدهایی پر از میوه تو دستشون بود. اما وقتی دختر دستش رو دراز کرد تا از سبد چیزی برداره، اونا آهسته راه افتادند و رفتند و ناپدید شدن. اون فریاد زد آه اونا چی بودم؟ من به کجا اومدم و شروع کرد به گریه کردن تو همین لحظه شاه گوسفندا پیشش برگشت و با دیدن ااشقای اون خیلی ناراحت شد. گوسفند گفت شاهزده عزیز چه اتفاقی افتاده آی کسی باهات رفتاری کرده؟ میراندا گفت نه فقط من عادت ندارم که با این شبها ها و گوسفندهایی که حرف میزنند زندگی کنم. همه چیز اینجا منو میترسونه. تو خیلی مهربونی که منو به اینجا آوردی. ولی من ازت میخوام که این لطف رو برای من بکنی و منو به همون دنیای عادیم برگردونی. گوستن با تعجب گفت نترس. من از تو میخوام که صبر کنی و به قصه های دردناک من گوش کنی. زمانی من یک شاه بودم و قلم پادشاهیم در دنیا معروف بود. همه دوستان منو دوست داشتن و دشمنامم از من میترسیدن. خلاصه که همه به من احترام میذاشتن. همه میگفتن که هیچ شاهی بهتر از من ندیدن. من به شکار کردن خیلی علاقه داشتم. یه روز که گبنی شکار کرده بودم کمی جلوتر از همراهان راه افتادم. بعد از کمی راه حیوانی رو روی یه دریاچه دیدم به سرعت به طرفش رفتم ولی هنوز راه زیادی نرفته بودم که گرمای زیادی حس کردم همون موقع دریاچه خوش شد و یه گودال بزرگ جلوی من باز شد که ازش آتیش بیرون میزد. من به انتهای گودال افتادم هنوز درست نفهمیده بودم چه بلایی سرم اومد که صدایی به من گفت این آتیش هم برای گرم کردن قلب سرد تو کافی نیست. من فریاد زدم چه کسی از سردی دل من شکایت کرده؟ صدا جواب داد یه موجود بدبخت که واقعا آشق توست. و تو همون لحظه شعله اونقدر زیاد شدن که نزدیک بود بسوزم. تو همون وقت جادوگری ظاهر شد که من تو عمرم کسی به اون زشتی ندیده بودم. اون به پشت دختر زیبایی تکیه داده بود. دختر لباسی طلایی به تنش داشت و احتمالاً برده اون بود. من فریاد زدم چرا راگوت؟ اسم اون جادوگر راگوت بود. و گفتم معنی این کارا چیه؟ تو دستور دادی که این کارها رو با من بکنن؟ اون جواب داد: بالاخره باید دید که مقصر کیه؟ تو تا حالا هرگز منو درک نکردی. من دلیلی نمی بینم که جادوگر پرقدرتی مثل من دلیل کارهاشو برای تو که یه شاه ضعیف هستی توضیح بده. من بیصران گفتم بگو ببینم از من چی میخوای تا جمع سرزمین پادشاهیم یا گنجهام جادوگر گفت گنت هات رو، البته من اگه بخوام میتونم از تو خیلی ثروت منتر بشم. برای همینم واقعا ثروت تو رو نمیخوام میخوام که تو قلبت رو به من بدی و با من ازدواج کنی در اون صورت من 20 تا سرزمین دیگه هم به تو میدم تا تو بر اونها حکومت کنی و صد تا قصر پر از طلا و پنج تا قصر پر از نقره بهت میدم خلاصه هر چی که بخوای در اختیارت میذاری. من گفتم خانم راگوت آخه کسی که مثل من در شرایط هقارت آوریه چطوری میتونه از خانم باوقاری مثل شما تقاضای ازدواج کنه؟ خواهش میکنم منو آزاد کنید تا من در آزادی کامل از شما تقاضای ازدواج کنم. اون گفت اگه تو واقعا منو دوست نداری نباید اهمیت بدی که کجایی. فکر نکن که میتونی منو فریب بدین. اگه قصد فرار کردن داری باید بهت اطمینان بدم که نمیتونی. اگه اینجا بمونی من میتونم نگهداری از گوسفندامو به تو بسپارم. اونا هم میتونم به خوبی تو حرف بزنن. اون همونطوری که داشت حرف میزد، منو به همین جایی آورد که الان ایستادیم. من اصلا به اونو اینجا توجه زیادی نداشتم. ولی اگه بخوام صادق باشم باید بگم که مه به تماشای برده زیباش شده بودم و حواسم به چیز دیگهای نبود. اما جادوگر جنس که متوجه این قضیه شده بود نگاهی به اون دختر انداخت و اون در همون لحظه نقش بر زمین شد و مرد من با دیدن این صحنه خیلی ناراحت شدم شمشیرم و در وردم تا سر از تنش جدا کنم اما باید بگم که همه تلاشام بیفایده بود اون به من گفت که تو به مدت پنج سال گسوند و ارباب این سرزمین میشی من نمیخوام دیگه صورت تو رو ببینم اینطوری بهتر فراموشت می تو لیاقت نداری که من دوست داشته باشم اون این حرفو زد و ناپدید شد و من راهی نداشتم جز اینکه شرایط پیش اومده رو بپذیرم گسوندها سخنگو منو به عنوان شاه خودشون پذیرفتن و به من گفتن که اونا هم شاسادایی بودن که از راه های مختلف گرفتار این جادوگر شدن. هرچند وقت یک بار یک نفر آزاد میشه و میتونه به سرزمین خودش برگرده. البته بعضی هم محکوم هستن که همیشه برده این جادوگر بمونن. اون دختر زیبام که برای تریف رو کردن یکی از همین برده ها بود. البته اون دختر نمرده بود. تبدیل به یه شبه شده. من گاهی وقتا اونو میبینم. البته که هیچ وقت با من حرف نمیزنه و منم به اون نزدیک نمیشم. چون میدونم که اگه جلو برم اون مثل یه سایه محو میشه. البته من فهمیدم که یکی دیگه از گوسفندام خیلی چشم به راه اون دختره. گویا اون قبلا به اون دخترک علاقمند بوده. و رابوت ظالم اونا رو از هم جدا کرده از اون به بعد من سعی کردم به اون دختر توجهی نداشته باشم و به فکر آزادی خودم باشم گاهی وقتا به جنگل میومدم و تو رو میدیدم که به شکار میای و تو مسابقات شرکت می کردی و میدیدم که این تو بودی که برنده می شدی شاهزاده خانم مدت زیادیه که من به تو علاقه دارم ولی جرئت نداشتم که عشقم رو بهت ابراز کنم چون تو با گوسفندی مثل من چه رفتاری میتونستی داشته باشی میراندا از شنیدن این حرفا خیلی تعجب کرده بود و حسن نمیدونست که باید چی بگه ولی فهمیده بود که نباید از حیوانا و سایه هایی که در اونجا هستن بترسه چون اونا هم روزی مثل اون آدم معمولی بودن دختر گفت ای کاش میشد که پاتی پاپا، گرابوگم و تنتن هم روزی زنده بشن زندانی اونجا معتقد بودن که شاید شاه گوسفند بتونه چنین کاری بکنه شاه گوسفند به اسبش گفت برو و به دنبال شبه دختر کوچولو یعنی پاتی پاپا و میمون و سگ شاهزاده بگرد و اونها رو بیار. به این ترتیب شاید شاساده کمی شاد بشه. چند لحظه نگذشته بود که میراندادید اون ستا به طرف امیان و هدایی هم تو دستشون هست. گرچه اونها نمیتونستن خیلی نزدیک بشن و میراندان نمیتونست به اونها دست بزنه. شاه گوسفند خیلی مهربون بود و میراندان رو هم خیلی دوست داشت. خیلی با ادب بود چنین گوسفند زیبایی رو نمیشد نادیده گرفت مخصوصاً وقتی که آدم بدونه روزی اون یک شاه مهم بوده و روزی هم دوره گوسفند بودنش تموم میشه بنابراین دختر زندگیش رو به امید روزی میگذرون که شاه گوسفند به حالت اولش برگرده شاه گسفن برای سرگرمی دختر و موجودای دیگه اونجا هر چند وقت یه بار مهمونیایی برگزار میکرد و اجازه میداد که همه راحت باشن و خوش بگذرونن پادشاه قاسدهایی رو به سرزمین اطراف میفرستاد تا از آخرین اخبار مطلع بشه یه روز از وقتی که قاسدها از راه رسیدن اعلام شد که خواهر میراندا میخواد با یه شاهزاده بزرگ ازدواج کنه و جشن ازدواج اون از باشکوه ترین جشن های. شاهزاده جوان گریه کنان گفت من چقدر بدبختم که باید تو چنین روز باشکوهی اینجا باشم و این جشن رو از دست بدم. من اینجا در زیر زمین زندونی شدم و همنشین گوسفندا و سایه ها و شبه ها هستم در حالی که خواهرم داره یه ملکه میشه و همه دوستا و اطرافیا در اونجا جمع شدن و فقط من نمیتونم به دیدنش برم پادشاه گوسفندا گفت شاسته خانم چرا گله و شکایت میکنی مگه من گفتم که تو نمیتونی به عروسی بری زود حاضر شو برو فقط به من یه قولی بده که برگردی آخه من اونقدر تو رو دوست دارم که زندگی بدون تو برام غیر ممکنه میراندا صادقانه بهرش قول داد که برگرده پادشاه هم محافظای زیادی رو برای همراهی اون آماده کرد. میراندا لباس های زیبایی پوشید که چند برابر اونو زیبا ترم کرده بود. کالسکی اونم که با های مروارید درست شده بودن توسط ش تا حیوان عجیب کشیده می شدن. چندتی نگهبان کلم برای مراقبت از اون آماده شده بود میراندا درست به موقع و تو هنگام شروع جشن عروسی به قصر پدرش رسید همه از دیدن اون همه شکوه و جلال اون تعجب کرده بودند او میشنید که همه از زیبایی اون حرف میزنند پدرش طوری به اون نگاه میکرد که میراندا میترسید نکنه اونو بشناسه اما پادشاه چنان از کشته شدن دخترش مطمئن بود که حتی به ذهنش هم نمی رسید که این دختر همون میراندا باشه. با این حال ترس از شناخته شدن سبب شد که میراندا قبل از پایان عروسی اونجا رو ترک کنه و چون با عجله اونجا رو ترک کرد جعبه زمردینش رو اونجا جا گذاشت. روی جعبه با دونه های الماس نوشته شده بود جواهراتی برای عروس. درباری ها بعد از مدتی جوه را پیدا کردن و اون رو باز کردن. درون جعبه پر از چیزهای زیبایی بود. پادشاه که میخواست پیش اون بره و ببینه اون کیه از ناپدید شدن ناگهانیش خیلی ناراحت شد و دستور داد که اگه اون دوباره برگشت همه درها رو ببندن تا نتونه بیرون بره. با اینکه مدت زیادی نبود که میراندا شاه گوسفندار را ترک کرده بود ولی این مدت برای اون مثل 100 سال گذشته بود اون در کنار چشمه و با انبوهی از هدایا منتظر شاه ساده بود به محض اینکه اون دید که داره از دور میاد مثل یک گوسفند واقعی از جا پرید و به استقبال دختر رفت و بهش گفت که تو نبودن اون چه اوقات سختی رو گذرونده و بیصبرانه منتظر برگشتن اون بوده مدتی از این ماجرا گذشته بود که قاصدا دوباره خبر آوردند که دختر دوم پادشاهم داره عروسی میکنه میراندا با شنیدن این خبر از شاه گوسفند خواست که بازم بهش اجازه بده که در عروسی شرکت کنه شاه گسفن که حس کرده بود ممکنه اتفاق بدی رخ بده با نگرانی گفت تو میخوای از پیش من بری این بدترین اتفاق برای منه اما من با همه رنج و غمی که از دوری تو میکشم میذارم که این بارم بری و این رو نشونه ای از عشق خودم به تو میدونم شاهزاده بهش قول داد که زمان زیادی اونجا نمونه و خیلی زود برگرده خلاصه شاهزاده دوباره با همون شکوه و جلال به قصر پدرش رفت. همه از دیدن او خوشحال شدن. او اونقدر زیبا شده بود که همه فکر میکردن یه پریه. هیچ کسی نمیتونست چشم ازش برداره. پادشاه که اون شب خیلی خوشحال بود با دیدن شاهزاده خانم دستور داد همه درها رو ببندن. وقتی عروسی دیگه داشت تموم میشد، دختر با سرعت بلند شد که بره اما به هر دری که میزد اون در بسته بود. تو همون موقع پادشاه اون اومد و گفت برای رفتن عجله نکنه و بمونه تا مراسم پایان جشن رو برای عرصدامات تدارک دیده شده ببینه. بعد اون به تالار مجللی بردن اونو و یک کاسه طلایی پر از آب آوردند تا دختر دستای زیباش رو در درون بشوره تو همون لحظه شاهزاده دیگه نتونست خودش رو نگه داره و به پای شاه افتاد و گفت بالاخره خواب من بعد از سال‌ها تعبیر شد شما در روز عروسی خواهرم کاسه آبی به من دادید تا دستام بشورم میبینید که اتفاق بدی برای شما نیفتاده پادشاه چند بار با خودش فکر کرده بود که این دختر چقدر شبیه میرانداه و فورا اونو شناخته بود. بنابراین اونو بوسید و گفت که دختر عزیزم یعنی میشه که تو ظلم منو یه روز فراموش کنی؟ چون من دستور دادم که تو رو بکشم و چون میترسیدم خواب تو باعث بشه من تاج و تختم را از دست بدم. حالا در واقع چنین اتفاقی افتاده و دوتا ازدواج کردن و پادشاه خودشون رو دارن و تمام دارو نداره من متعلق به تو میشه. پادشاه با گفتن این حرف تاج خودش رو از سرش برداشت و رو سر میراندا گذاشت و فریاد زد. عمرتان دراز باد ملک میراندا. همه درباریان هم فریاد زدن. عمرتان دراز باد ملک میراندا. دو خوهر دیگه هم پیش میراندا رفتند و دست انداختم به گردن هزاران بار اونو بوسیدم و در بین گریه ها و خنده ها و بوسه ها، حرفها میراندا از پدرش تشکر کرد و سراغ محافظا رو گرفت. چون زندگی خودش رو مدیون اون میدونست. اما با کمال تعصب شنید که اون مرده. بعد به کناری رفت و، پادشاه از میراندا پرسید که بعد از اون صبح وحشتناک چه بلایی سرش اومده. همه مهمون ها میخواستم بدونن که چه اتفاقی افتاده؟ تو همون موقع که میراندا پیش خواهرش و پدرش بودش، شاه گوسفن بی صبرانه منتظر اون بود و نمیدونست که چرا دختر تا الان برنگشته، اون خیلی نگران شده بود. و گریه خونم با خودش میگفت اون دیگه بر نمیگرده این صورت گوسپندی من اونو ترسونده وای که بدون میراندا من چه آدم بدبختی هستم آه راگوت ظالم حالا دیگه تنبیه من کامل شده اون مدت زیادو با این فکرها گذрун تا اینکه هوا تاریک شد و بازم خبری از شاهزاده نشد برابرین به طرف قصر پادشاه به راه افتاد. وقتی به اونجا رسید، سراغ میراندا رو گرفت. اما تا اون موقع همه ماجرای اونها رو شنیده بودن و دیگه نمیخواستن که میراندا پیش شاه گوسفندا برگرده. بنابراین اونا نذاشته بودن که اون میراندا رو ببینه. بالاخره بعد از اصرار زیاد بهش اجازه دادن که داخل بشه. و با موانعی که سر راهش گذاشته بودند با قلبی شکسته همونجا کنار دروازه قصر افتاد و مرد. در این موقع شاه که از این اتفاقات خبر نداشت، میراندا رو برای گردش به شهر برده بود. در تمام شهر روی همه پنجرهها، و خونه ها و تو همه میدون ها به افتخار اون هزاران و هزاران مشعل روشن کرده بودند. اما تو موقع برگشت اونا با صحنه خیلی دردآوری روبرو شدن. گوسفند مهربان و عزیز اون ساکت و آرام و بیهرکت روی زمین افتاده بود. میراندا خودش رو از کالسکه پایین انداخت و در حالی که به شدت گریه کرد، به طرف اون رفت و دید که با شکستن قلش باعث شده که اون جونش رو از دست بده. میراندا تا مدت زیادی ناراحت بود. طوری که همه فکر میکردن اونم مرده. بله. یک ساده همیشه هم خوشحال نیست. مخصوصا وقتی که زیر قولش بزنه. همیشه بزرگترین بدبختی ها وقتی برای افراد پیش میاد که اونا فکر میکنند که به آرزوهاشون رسیدند رسیدن. دوستای خوبم. امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت برده باشید و تا یه داستان دیگه منتظرمون باشید سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی